خدا بازی مشکل دیگه کلان نه برا باس بزرد بیات می هان تو و تلسان هی کن چنج هن، هن، هن، هن، هن، هن، هن، هن. سلام به همه به همه اونایی میزن به ما قهقه بهتون بگم تو اکسلی تو الان قلم خ دست چپ دوستها رو به قافی بازی کن و با کله می زنه پسد مندیگوونی سک بهم بخین من ای رفتتون ایرانی هم میدونم دوستها رو به جنگی ولیش کس میخوری می و میدونن ناحت میشی میخوام لیتو که پس بیا باامکنناگییا و وگرنه زندگی تو بعد بهم ببخشی. پسر اگه پیزمون جای بیا بام کل کل تو کاکی هر کجا بگی میام مثل آدم خاکی سر تو با کلمه تا میکو برا دیوار تا که ازم بشی بیزار تا برا دمانه بکش سیگاه تا یه داد سداد کنه علا بیکار بدا فهمید شد یا نه گرفت یا مو یا بیشتر بارو باس همه اش دونبال اومون ما همه سی شیر با باس سیم جلو خوشکار اومون بارو باس با ما میگن ایس منه بشو میگ برو باس همه اش دوم بالمون مهم ازشید بای بسیم جلو پشکارمون برو باس مهم یا ایس منو بشین یا برو بابا برو بابا کامل از نوره ایس من آه بذار ایک هم اولی از دشمنو حالتون تو خوبه احمقا میخوای چگاه کنین حالا میخوای بجنگی این با ما؟ برون و بابا اسش مشکلین که بخواید رو دروشین با ما. چقدر شما هستین چاقال باحال؟ من فرنگی بابا یه روز با گرافیتی جاش میندازم. اگه خدا بخواد یه روزی کارمو توی سایت باپسمند دات کام داش میندازم. یه روز می رسین اون گوش بدم به ما، گام دشمنات تا کنید فنن آ کارو غلط اشتباه، فکرین نباشی چرا میشدن؟ خود خدا خودش, خودش, خودش خوب میدونه که ما خیلی وقت نگی زد و خسرم. اگه بعضی دشمنا خود میبینن فقط به خاطر خدا نه منم یه آدم معمولی اگه بخوای بدونی که تا کیف یه آدمو نمی‌دونید. همش دنبال بود. منم بس جلو پشکارم بود. بارو باص به ما میگن ایست منم بهشون میگن بابا بارو بابا کمال نمره 20. بارو همش دنبال بود. منم بس شیت وایم جلو پشکارم بود. بارو باس به ما میگن ایست منم بهشون میگن بابا بارو بابا کمال نمره 20. If you love hip hop then you know hip hop is clear. Hip -hop on me look right now. I have the hardest trying to find where I can take hip -hop instruction 8 years and I fish myself میدونی پسر اگه تو عشق اترافه باید که اونی خاطره تو میدونی من الان روی زمینه این hip-hop میدونی من سخت نتلاشم برای کلاس hip-hop بوده بودوده هشت سال. معلم هم هم خودم بوده آه. اکسی